این داستان درخت حقشناس بیوهزن تنگ دستی با تنها دختر خود در یکی از دهکده های ماگیران زندگی می‌کرد. اونها چند سال پیش به اون دهکده اومده بودند. در انگام زنده بودن شوهر بیوهزن که از بازرگانای شهر بود خانواده اونها در رفاه و آسایش زندگی می‌کردند. اما راست گفتن که خوشبختی دیر نیست. یه روز بازرگان در بستر بیماری افتاد و بعد از زمان کوتاهی مرد و با عزت و احترام بسیار به خاک سپرده شد. بیوزند با دختر خودش تنها و بیار و یاور یاورموند. زن سررشته از کارهای بازرگانی نداشت و بخت از او روی برگندونده بود. هرچی بود، مشتریاش روز به روز کمتر شدند اما بدهی روز به روز بیشتر می شدند آنچه که بیوزن ناچار شد هرچی رو که برای اون باقی مونده بفروشه و وام های خودش رو بپردازه و شهر رو ترک کنه و به دهکده بیاد و زندگی ساده و محقری برای خودش ترتیب بده اون همه اشق و علاقش رو وقف دختر خود کرد و در تعلیم و تربیت اون از هیچ کوششی دریق نکرد دختر هرچی بزرگتر میشد با دل و جن محبت ها و فداکاری های مادر رو جبران میکرد. دختر جوان که دلی سرشار از مهر و محبت داشت با همه مردمان دلسوز و مهربان بود هر کس اونو می دید دوستش داشت وزن است داشتن چنین دختری خیلی شاد بود چون اونو میدید که با علاقه بسیار به اون میرسه کارهاش رو انجام میده حیاتو جارو میکنه آب از چشمه میاره همه غم و دردش رو فراموش می کرد. اما بیوزن پیر شد و چون پولشون روز به روز کمتر میشد کوی کوچیک تصمیم گرفت که برای کمک کردن به مادر برای خودش کاری پیدا کنه اون که دختری دوست داشتنی و مهربون بود به زودی جای خوبی رو برای کار کردن توی شهر پیدا کرد ما اینکه بیشتر از یک ساعت راه از دهکده تا شهر بود حانا نخواست خواست مادر پیرش رو تنها بگذاره هر روز در سفیده بامداد به شهر می رفت و وقتی به خونه برمی گشت شب شده بود اون هر روز قسمتی از غذا رو که در شهر بهش می دو بخجهی می و برای مادرش می آورد. رفتن به شهر، به خصوص در زمستون حتی در پاییز که باد و طوفان می گرفت براش بسیار دشوار بود اما هاناکوی اتنایی به سختی راه نمی کرد شادمانه جست و خیز کنم، این راه رو می پیمود و با حوش و حافظه نیرومندی که داشت هرچی رو که در جنگل می دید به خاطر می سپو. هاناکو آشیانه هر پرنده ای رو هر گل تازه تازه‌شکفته‌ای رو می‌شناخت اما بیشتر از همه به درخت بلوط تنومندی علاقه‌مند بود که شاخه هاش رو به هر طرف گسترده بود و در نیمه راه شهر و دهکده سر بر‌آفروشته بود تنه راست و بلند اون از فاصله دور دیده میشد. هاناکو عادت کرده بود که هر روز کمی در کنار ای درخت بیسته و بی به برف و بارون یا آفتاب گرم و سوزان با درخت درد دل کنه و بگه که اون روز توی شهر چه اتفاقایی افتاده و اون خودش چه چیزهایی دیده که درخت بلود با اینکه خیلی بزرگتر از هاناکو بود نمیتونست اونها را ببینه هاناکو به درخت میگفت که کدوم گل در باغچه کوچک که اون شکوفه کرده گاهی با اون درباره مادرش حرف میزد. میگفت می, می گفتی پاهاش به زحمت میتونه تنش رو این سو و اون سو بکشه و چقدر دلش می زندگی رو برای مادرش آسون و راحت تر بکنه دختر ضمن این پرچونگی ها پوسته پیر و از ترکه تنه درخت گولاسا رو نوازش می کرد و برگها و شاخه های خشکی رو که باد روی ریشه های اون انداخته بود جمع می کرد و دور می رکد. مدت سه سال هاناکو هر روز به این ترتیب با درخت بلور درد دل میکرد و کم کم به کلی فراموش کرده بود که اون موجودی کاملا متفاوت با او. اون درخت رو تنها دوست خودش میدونست که میتونه همه شادی‌ها و غماش رو با اون درمیون بذاره. یه روز عصر به عادت همیشه با غذایی که از شهر برای مادرش میبرد به دهگده برمیگشت. اون روز کار اون زیاد طول کشیده بود و عجله داشت که هر زودتر خودشو به خونه برسونه. می ترسید که اگه دیرتر از هر روز به خونه برسه مادرش نگرانش بشه. همینطور که راه می رفت، از دور افق رو برای دیدن درخت که به اون نشون میداد که به نیمه راه خود رسیده جستجو می کرد. اگرچه اون روز وقت و فرصت نداشت که مدتی کنار درخت بییزه و باش حرف بزنه اما میتونست لحظه کنارش توقف کنه و تنه اونو نوازش بکنه از دور افق روبرو رو نگاه میکرد و از اینکه به زودی دوستش میخواد ببینه شادی و لذتی بی پایان در دل خودش حس میکرد متوجه نبود که ابرای تیره روی آسمون رو پوشونده تازه اولین قطرهای بارون به سرش فرود میافتاد که اون به سرعت به طرف درخت بلود دوید و زیر شاخ و برگهای انبوهش پناه برد. بارون به شدت به شاخ و برگهای درخت فرو می ریخت و حاناکا خود رو سخت به تنه درخت می فشرد. صدای مبهم آب و میشنید شنید. ناگهان اینطوری تصور کرد که صدای ضعیفی در بین صدای قطره بارون به گوشش میرسه. حالا عزیز، حالا دیگه وقتش رسیده که ما از هم جدا بشیم، سه روز دیگه هیزم شکنای امیر برای انداختن من به اینجا میان. میخوان با تنه من کشتی بسازد، صنعتگران زیادی به دهکده شما میان، همه اونا در ساختمان کشتی کار می کنند. تا سه ماه دیگه کشتی باید از کارگاه کشتی سازی بیرون بیاد. ناظر ساختمان کشتی به این مناسبت جشن بزرگی میگیره که امیر خود نیز در اون شرکت خواهد کرد. در این لحظه جدایی و خداحافظی از دوستی و محبت تو می میکنم. دل پاکتو منو عمیقا به هیجان آورده. اما به چیزی که بیشتر از همه ارزش میدم فداکاری و از خودگذشتگی زیاد توه در اینکه وسایل راحتی و آسایش مادر پیر تو فراهم بکنی تو راستی شایستگی اینو داری که زندگی بهتر و راحتتری داشته باشی چون من توانایی این رو دارم که این زندگی رو برای تو تعمین کنم کمکت میکنم خوب به چه که میخوام بگم گوش کن وقتی ناظر ساختمان کشتی دستور به آب انداختن آن رو میده هیچ نیرویی در جهان پیدا نخواهد شد که بتونه من از جایی که هستم تکون بده بالاخره امیر اعلام خواهد کرد که هر کس بتواند کشتی را از کارگاه به سوی دریا ببرد و به آب بندازد پاداش بزرگی از او دریافت خواهد کرد اما از این بعده نیست سودی نخواهد بود تنها موقعی که تو به من نزدیک بشی و آهسته بگی من خاناکا هستم که پیش تو اومدم کشتی خود به خود راه خواهد افتاد و خود رو در آب خواهد انداخت خدا حافظ خاناکای عزیز سعی کن همیشه همینطور خوب و مهربان باشی تازه حرفای درخت به پایان رسیده بود که باران هم بند آمد آسمان روشن شد هاناکو سخت در شگفت افتاد با خودش گفت حتما خواب می‌دیدم چون درخت نمی تونه حرف بزنه اگر چه این درخت بهترین دوست من باشه سپس با لطف و مهربانی بسیار بار دیگه تنه درخت رو نوازش کرد و مخچه خودشو رو برداشت و به خونه دوید شامگاه فردا باز هم هاناکو در پای درخت ایستاد و نفس نفس زنان به او گفت میدونی من دیشب خواب عجیبی دیدم خواب دیدم که تو رو میخوان بندازن اما خوشبختانه این خوابی بیشتر نبود من اطمینان دارم که هرگز چنین اتفاقی برای تو نمیفته خدا نکنه چنین اتفاقی بیفته اون وقت من با چه کسی میتونم درد دل کنم اما در روز سوم که اصر خاناکو به خانه خود برمیگشت چون از دورخواست دوستش درخت بلود را ببینه، اثری از شاخ و بررگای انبوه او ندید. هراسان به راه خودش ادامه داد به دریافت که پیشگویی بلود به حقیقت پیوسته. آنجا که تنی بلند او سر افراشته بود، هیزموم شکننا سرگرم جدا کردن آخرین شاخ و برکا بودند. هاناکو که افسرده و غمزده برای آخرین بار، تنه درخت محبوب خود رو نوازش کرد و اونگاه آهسته و آرام به خونه آمد. اون شب آواز شاد و انگیز دختر جوان در خونه تنی نبود. اون همینطور که خاموش و آرام به مادرش خدمت میکرد نمیتونست دمی درخت بیچاره رو از یاد ببره. بله پیشگوی درخت بلود به حقیقت پیوست. گروه بزرگی از کارگران به دهکده آمدند اونها تنه درخت را اره کردند رمده کردند و تیرک‌هایی در اون فرو کردند و سپس در کارگاه نزدیک دهکده و کنار دریا به ساختن کشتی بزرگی آغاز کردند بعد از سه ماه در کنار دریا کشتی باشکوه و زیبایی که هنوز بوی جنگل میداد سر روز به آب کشتی فرا رسید. آن روز جشن بزرگی برپا کردن. جمعیتی انبوه در کنار دریا گرد آمد. هر بهترین لباس خود را برتن کرده بود. اده از کاسب کارانیز به اونجا اومدن و به فروختن نونبرنجی و شیرینی و ماهی تازه و خوردنی های دیگه مشغول شدن. گروهی از هنر نیز به اونجا اومدن و در کنار رودخونه که آبش خوش شده بود صحنه ای ساختند و نمایش دادند. همه در انتظار آمدن امیر بودند که با همراهان زیادی آمد همه کنار دریا رفتند. جمعیت چنان انبوه به هم فشرده بود که هر وقت ن برنج روی اونو میانداختی نمیتونستی خود را از بین مردم به زمین برسونیم. اما چی شد؟ چی پیش اومد؟ کارگرها با تمام نیرو و توان خود کشتی را کشیدند تنابها به خشخش افتاد اما کشتی باشوکو از جاشتکون نخورد و اگر کشتی باشکوه به آب نمی به چه دردی میخورد؟ نازر ساختمان کشتی از خشم سیاه و کبود شد چه آبروریزی و و شرمساری بزرگی اون هم در حضور امیر اما اون هرچی داد و فریاد کرد و گلوش رو پاره کرد و کارگرا رو تحییج و تحریک کرد کاری از پیش نرفت که نرفت کشتی زره از جاش تکون نخورد بعد تماشاگرها هم به کمک کارگرا اومدن اما باز هم کشتی کوچکترین تکونی نخورد امیر دستور داد اعلام کردن که هر کس بتونه سهر و جادو رو باطل کنه و کشتی رو به آب بندازه پاداش بزرگی از او خواهد گرفت. بسیاری از مردان که در سراسر کشور به زورمندی بلند آغازه بودن دعوت امیر رو پذیرفتند و گذشته از اونها راهبان نیرنگ باز و بازان بی آذر نیست به دهکده اومدند و هر کدوم به نوبه خود کوشید که کشتی رو از جاش تکون بده. اما هیچ کدوم از اونها توفیقی نیافت. کشتی در کرانه دریا افتاده بود و بوی درخت و خورشید میداد. اما کسی نمیتونست اونو روی آب بلغزونه. حانکای کوچیک هم که در بین ساکنهای دهکده ایستاده بود مدتی به دقت به آنچه روی میداد نگاه کرد. با خود گفت آیا سفارش درخت را انجام بدم یا نه؟ اما دید که عدهای زیادی از اشخاص ناشناس در اونجا جمع شدن و بسیاری از نیرومندترین مردان کشور زور و نیروی خودشون آزمودند و هرگاه دختر جوان ناتوانی چون او بخواد به طرف کشتی بره همه مسخرهش میکنند تازه او یقین نداشت که اون روز خواب ندیده اما بعد از اینکه سفارش درخت رو به خاطر آورد و دید که همه پیشگویی های اون به حقیقت پیپسته به خودش جرأت داد و به طرف کشتی رفت و تعظیم بلند بالایی کرد و گفت اجازه بدید من هم به نوقع خود سعی خودم رو برای باطل کردن سحر و جادویی که کشتی رو بر جای خود میخکوب کرده بکنم از آنچه میترسید به سرش اومد همه ریش خندش کردن مسیاری از مردای زورمند و راهبان پر رفند در این وامانده بودند و حالا دختر جوان ناتوانی اومده بود و ادعا میکرد که توانایی انجام دادن کاری رو داره که کسی از احده اون برنه بود. داد سرش زدن که برگرد به خونت تا به سرت نیمده. تو اینجا تنها اسباب درد سر ماهی. اما همسایه های او که در بین تماشاگرا بودن فریاد زدن اون کوچی کوچیکه بذارید امتحان کنه. اون دختری خوش قلب و مهربون. دختر احمقی هم نیست. کسی چه میدونه شاید او بتونه این مشکل را حل کنه. سرانجام نازر ساختمان کشتی دختر را به این کار تحریک کرد. چون نمیخواست هیچ امکانی رو از دست بده. هاناکو با تشویق و نگرانی به کشتی نزدیک شد و آهسته زمزمه کرد. من هاناکو کوچکم. او از شدت هیجان، چنان آهسته حرف میزد که دیگران کلمه ای رو از حرفهاش نتونستن بفهمند. همه تماشاگران چشم و دوخته بودند. میخواستن ببینن چی پیش میاد. آناکو اندکی آروم گرفت و بیشتر به کشتی نزدیک شد. دیواره صاف کشتی رو نوازش کرد. گفت من آناکو هستم پیش تو اومدم. دا این حرف ها از دهان اون بیرون اومد. کشتی از جاش تکون خورد و به حرکت درمد و آهسته و آروم به سوی آب لغزید. مردم فریاد شادی برآوردند. همه به تحسین و اعجاب به هاناکوی کوچیک چشم دختند. امیر دستور داد هاناکو رو پیش او بردند و از اون پرسید که چه پاداشی میخواد. هاناکو دوستی خودش با درخت رو برای امیر تعریف کرد. گفت که درخ چگونه میخواسته به او و مادرش کمک بکنه. امیر که دختر جوان مهربان و فروتن رو به دیده تحسین مینگریست پاداشی بزرگ به اون داد و او و مادرش از اون پس تونستن زندگی راحت و آسوده‌ای داشته باشند. عزیزای شنونده، امیدوارم که از این داستان لذت برده باشید. خدا نگهدار.